بسم الله الرحمن الرحيم ملحقات المبتدا والخبر ملحقات المبتدا والخبر 4 در يعني 4 موضوع در ملحقات المبتدا والخبر ما ترنكوني 1 في المبتدا الوصفي زمانك المبتدا وصف باشه. زمانك المبتدا تش باش وصف باشه. متى يكون المبتدا صفة؟ تش زمان ميگه مبتدا صفه است 55 هل يمكن ان تكون صفه بعد الاستفهام او النفي غير مبتدا اه ممكن است أي ممكن است صفتی که بعد از استفهام یا نفی اومده غیر مبتدا باشه این سوال پاسخ میده بله ممکنه که در این ها وجود بیاد در قاعده چار میگه متوقعته صفت بعد نفی او استفهام و كانت عامله في اسم ظاهر او زمیر منفصل كانت مبتدا و بعدها مرفوعا بها اغنا عن الخبر خیلی بحث ساده میگه هرگاه واقع شد صفت بعد از نفی یا بعد از استفهام و عمل کرده بود این صفت، این وصف در اسم ظاهری که ما بعدش اومده است یا در زمیر منفصل اینجا این صفت یا این وصف خودش مبتدا است خودش چه هست؟ و ما بعدش مرفوعی هست که این مرفوع ما رو از خبر چکار میکنه؟ بینیاز میکنه صد ما صد خبر میشه صد ما صد خبر میشه ماند ما آلمون اخوک بالام نیست عالم برادرت به خب اینجا ترکیم چی میشه؟ میگیم آلمان مبتدا اخوکا مرفوعش فائلش بالامر جار و مجروف. هل عارفون انتما به حالی شما دو نفر به حال من آگاهید اینجا هم عارفون میگیم مبتدا انتما مرفوعش به حالی هم جار و مجروف ببینیم که در این دو مثال ما خبری نداریم فواعد میگه یشترطو في المرفوعی به انتکتفی بهی فی المعنه ولی اینجا یه شرطی میگه وجود داره میگه شرط هست در در اونی که مرفوح هست به وسیله صفت در اونی که مرفوح هست به وسیله چی؟ صفت که میگه اکتفا بشه بشه که بش چی بشه؟ اکتفا بشه معنید ما کاتبون اخواق نیست نویسنده دو برادرت خب اینجا میبینیم که اکتفا شده به اخواک کلمه دیگهی؟ دیگه, دیگه نومد فایذا لم تكتفی به اما اگر به اکتفانه شده بود مثلا ما قائم بعدا زید هم اومده ما یعنی اگر جمله اینجوری بود ما قائم خلاص اکتفا شده بود دیگه به مرفوع که بعد از وصف اومده ولی در این مثال که ما قائم زید اکتفانه شده بلکه میگه اینجا لم بحث خودمونو نداره اون بحث خودمون که خبری وجود نداره بلکه در این خبر وجود داره این ترکیبش چطوری هست؟ ما قائمون ابواه و زید در واقع اینجوری ما قائمون ما زیدون قائمون ابواه و زید ایساده میستن پدر پدار و مادرش اینجوری میشه نه؟ خب اینجا ترکیب فرق میکنه. اگر ما قائمون ابواه و زیدون ما اکتفا نکرده دا بودیم به اون مرفوعی که بعد از وصف اومده ترکیب فرق بکنه چی میشه؟ زیدی زید که در آخر اومده میشه مبتدا آخر و قائمون خبر مقدم و ابواهو هم فائل قائمون فائل چه؟ اما اذا کنه مرفوعو ها زمیرا خوب گفته بود اگر بعد از اون وصف اسم ظاهر یا زمیر منفصل بیاد اسم ظاهر یا چی؟ اون موقع اون اسم ظاهر و اون زمیر منفصل میشن مرفوع به وسیله من وصف دیگه خبری وجود اما اگر نه بعد از وصف زمیر مستتر وجود داشت دیگه زمیر بارزی منفسیلی و اسم ظاهری وجود در این حالت ترکیب چی میشه؟ توضیحش میده دیگه اما اضاکان مرفوع از زمیر مستتره. اما زمانی که مرفوع زمیر چی باشه؟ مانند زیدون لا واقفون زدی ایستاده نیست؟ بعد از واقفون ما زمیر بارس زمیر منفصیل نداریم اسم ظاهر هم نداری میگه در این حالت که مرفوع ما زمیر مستطره مرفوع ما چیه؟ خب فتکون و خبر للمبتده قبلها میگه در این حالت این این وصف مبتده نه خبر مبتدا قبلش میشه خبر مبتده يعني لا زيد واقفون زيدوا المبتدا واقفون خبرش واقفون تشيش باله النقطه خيل نقطة ايز بعدني نجي دو خو انجا گفته بود اگر بعد از نه بعد از نه و بعد از استفهام استفهام اگر صفت بيات يا ابو الوصف درين شماره دو توضیح بديك که منظور از وصف یعنی چی المراد بالوصف اسم الفاعل والمفعول والصفه المشبهة وافعل التفزيل واسم المنسوب نجي منظور از وصف اسم فائل، اسم مفعول، صفت مشبه، افعل التفضیل و اسم منصوبه اگر یکی از این اومده بود غیر انه اذا کان الوصف مفعولا کان اما بعده نائب فائل سادا مسد دلخبر با این فرق زمانی که این وصف این وصفی که بعد از استفام یا بعد از نفع اومده بود اگر اسم مفعول بود غیر انه اذا کان الوصف مفعولا نباید گفته بود مفعولا بعد میگفت اگر کان الوصف اسم مفقوله اسم نه که مفعول. مفعول فرق فارغ میکنه با اسم مفعول اشتباه ده میگه اگر این وصف اسم مفعول بود ما بعد چطور میگیم نائب فایل ما بعد چطور میگیم چی کساد صد خبرش خبر ما نده هل معذورن اخوک که معذورن میگیم مبتدا اخو میگیم نائب فایل اما هر هل ناصرون اخوک اینجا میگیم نه اینجا بگیم اخوک فائله اخوك در حال ناصرون اخوك. ولی اگر اسم مفعول باشه بگیم نائب فاعل. هل منصورون اخوك؟ اینجا بگیم اخوک نائب فاعل بعد. این فرق و توضیح داد در, در بقیه بگیم مرفوع که فائله دیگه در واقع ولی در اگر بعد از اسم مفعول و مده بود نائب فائل باشید سه یکونو نفی و الاستفهم بالحرفی کما مر او بغیری بعدن گفته بود اگر بعد از نفی بیاد آیا منظور نفی فقط به حسیل حرف یا هر نفی بیگه نه نف می... نفی و استفان میتونن با حرف انجام بگیرن مانند مثالهای رد شدن او به غیری یا به چیزای دیگه مانند لیسه منطلقون اخواک که اینجا نفی ما به حسیل فعل انجام گرفته است رونده نیست دولارادر هست منطلقون وصف اسم لیسه هست اخواق فائل منطلقون هست دیگه اینجا خبری برای لیسه وجود ندارد چرا؟ چون وصفی اومده که وصف بعد از نفی اومده دیگه خبر وجود ندارد کیف جالسون و غلاما اینجا هم چون جالسون بعد از استفام اومده بعد از کیف اومده غلاما فائلش میشند و خبری دیگه وجود وقد و قد یکونه و تاویل این نفی میتونه هم باشه چطوری؟ یعنی جمله باشه که در تعویل نفیه در واقع اللحازم معنای نفیه لازم معنای چیه؟ مانند انما قائمون عبداق خب انما حصره. و حصر در واقع نوعی نفیه معنیش چونیده؟ انما قائمون عبداق یعنی فقط دو, دو تو اصادند فقط دو تو اصادند یعنی بقیه؟ در واقع جمله چونی ما قائمون الا عبداق جز دو غلام تو کسی؟ باله پس اینجا هم انما قائمون عبداق قائمون وصفه بعد از کلمه که که در تاویل نفیه لذا عبداق مرفوعش دیگه اینجا خبری وجود ندارد یا همچنین غیر و ظاهبین اینجا غیر داره نفی میکنه روانده نیست فسران تو اینجا هم ظاهبین وصفه بانوك فاعلشه دیگه اینجا ما خبری نداریم غیر هم مبتداه فان المعنى بگی در واقع معنای این دو جمله چونه ما قائمون الهدق نفیه نافیه نه یا ما ذاهب بانوك اینم چیه نافیه بله الا نا نا؟ نا علي. على ان الوصف بعد لیسه يكون مرفوعا بها الا انه اسمها والفاعل يقضي ان خبره بگی متوجه باش وصفیت بعد از لیسه اومده مرفوع لیسه هست چون اسم لیسه هست و خبری هم وجود ندار چون فاعل وصف ما از خبر چکار کرده؟ بینیاز کرده یعنی در ليس منطلقون اخواک اخواک فائل منطلقون هست و خبری دیگه اینجا برای وجود همین بینیاز کرده از خبر و بعد غیر یجرب المظاف علی ان غیرهی المبتدق و فائل الوصف اغنق عنی الخبر و بعد از غیر هم چون غیر همیشه مضاف کلمه بعدی مجرور شده به وسیله مضاف. و غیر هم مبتدای و فاعل وصف که همون بنوکه باشه ما رو خبر چکار کرده؟ نیاز کرده پنجا پنجا اذا طابقت صفت مع بعدها في الافرادی كانت مبتداً و ما بعدها مرفوعاً صد ما صد الخبر او خبرا مقدماً و ما بعدها مبتداً مؤخراً در قاعده پنجا پنجا نقطه ای رو داره بیان بیکنه بگه زمانی که مطابقت داشت صفت با ما بعدش در مفرد، یعنی هر تا مفرد بودند اینجا دو اعراب داره این صفت مبتدا هست و ما بعدش مرفوع هست به وسیله همین وصف و صد صد خبر شده این یک اعراب دو یا بگیم که نه این وصف خبر مقدمه و ما بعدش مبتداه مثلا اینجا ما ندهه القادمون و غایبون اینجا دو اعراب میتونیم بگیم میتونیم بگیم قادمون مبتدا الغایب و و خبری نداریم میتونیم بگیم نه قادمان خبر مقدم ال هم مبتدا ولی این زمانی که در در مفرد بودن با هم دیگه چه داشته باشد مطابقت داشته باشد و اذا طابقتوا في التثنيه والجمع اما اگر در تثنیه و جمع با هم دیگه چه داشتن تطابق داشتن یعنی هر دو تا نسانه بودن یا هر دو تا چی بودن جمع بودن اینجا دیگه اینجا نه تایان الاخبار بها اینجا بگیم که صفات در درصد خبره هذا الشيء ليست والابتداء بما بعدها وما بعد شمتية مبتدائي هل هذا القادماني الغائباني؟ قادماني يكون خبر مقدام الغائباني هم مبتدائي مؤخر ما راحلون أنتم راحلون خبر مقدم أنتم هم مبتدائي مؤخر وإذا كانت الصفة مفردة وما بعدها مثنى أو مجموعا تحتم الابتداء بها وكان ما بعدها مرفوعا صدم صد الخبر وزمانك الصفات مفردون والوصف شو بود مفردون ما ندي هل عارف أنتما بحالي صفة ماشية مفرد وما بعدش مسنابون ما ندي هل أنتما هل عارف أنتما أنتما شيء مسناب بارج بيجي درين حالات در این حالت صد در صد وصف مبتدایه و ما بعدش که صد در صد چیه؟ خبر دیگه اعراب دیگهی؟ نه داره مانند ما مسافرون اخوای که میگیم مسافرون مبتدا اخوا مرفوعش هست اخوای چیش هست؟ مرفوعش هست که همون فائلشه دیگه نمیتونیم اعراب دیگهی براش بیاریم دیگه نمیتونیم بگیم که نه اون خبر مقدمه و این ما مسافرون انتم همچنين میگيم مسافرون مبتدا وانتم مرفوعش انتو چیج مرفوعش خب بحث بعدی بحث بعدی شماره دو یعنی ملحقات مبتدا و خبر شماره دوش في وقوع نكرة المشتقه بعد تمام المبتدا والخبر يجيك مساله دیگه رو که بعضا خیلی مهم مطرح میکنه میگه اگر یک نكره مشتقي بعد از اگر یک نکره مشتقی بعد از چی آمده بود؟ بعد از کامل بودن مبتدا و خبر یعنی مبتدا و خبر کامل بودن یک مشتق نکره بعدش اومده بود این چی میشه اعرابش؟ این خیلی مثلا مهمیه بگه ما حکم نکره مشتق بعد تمام المبتدای و خبر حکم نکره مشتقی که بعد از تمام کامل بودن مبتدا و خبر بیاد حکمش چیه؟ این سوال پاسخ میده در قاعده پنجا و شش میگه متاکان الخبر ظرفا او جارا و مجرورا او اسم استفهامه هرگاه خبر ما ظرف بود هرگاه خبر ما چی بود؟ یا جار و مجرور بود خبر یا اسم استفهام بود یا دلو علی الظرفیتی که دلالت بر ظرف میکرد ثم وقعت بعد ذالک نکرتون مشتقه. بعد از این یعنی بعد از این که خبر ما یکی از اینا بود نکره مشتقی اومده بود نکره اومده بود؟ فلکه فیها وجهان اینجا تو دو وجه میتونی داشته باش دو وجه جایزه، دو ایراب چیه؟ یک الرفع على انها خبرون مبتدئی و کلون من الظرفی او الجار و او اسم و ببین این خیلی مسئله مهم نیا تو اینجا دو وجه داری اون نکره ای. اون نکره رو مرفوع بکنی؟ ببین اون نکره رو چه قرار بدیم مرفو بر این اساس که خبر مبتدای ما قبلشه خبر چیه؟ خب زرف و... ظرف رو چه حساب میکنیم جار و مدرور رو چه حساب میکنیم استفهام رو چه حساب میکنیم اینا رو لغو حساب میکنیم اینا رو چه حساب میکنیم؟ لغو مثال توضیحش میدم و نسب حالت دوم که اینه که ما میتونیم این نکره ای رو که در پایان جمله اومده منصوبش کنیم مرفوش کنیم میتونیم خبرش قرار بدین برای مبتدای ماقم میتونین منصوبش کنین به خاطر این که حال هست به خاطر قرار دادنش حال و کلون من مذکر خبر مقدم و, و اون جارو مدرور یا اون ظرف یا اون اسم استفهام چه حساب میکنین؟ خبر یعنی مبتدا خبرو ما داریم این رو چه حساب میکنین؟ حال این نکرالو چه حساب میکنین؟ پس اگر بعد از ببین اگر بعد از پایان مبترده و خبر نکره مشتقی اومده بود ما دو حالت رو میتونیم براش قایل میشه یا میتونیم مرفوش کنیم خبرش قرار بدیم این و مجرور و این و اینا رو لغو حساب کنیم میتونیم نه منصوبش کنیم اونا رو خبر حساب کنیم اینا منصوب کنیم و حالش حساب کنیم متوجه شدیم؟ حالا ترکیبش میکنم مانند اندی نائم او نائم دقت داشته باش اندی یوسفو میتونیم اینجا اندی رو خبر حساب کنیم یوسف رو مبتدا حساب کنیم نایمن رو ببین بعدش نکره اومده است اندی یوسفو و میتونیم بگیم میتونیم بگیم اندی یوسف و نایمن اگر نایمنش کردیم اندی یوسفو و اون موقع اندی رو لغف حساب میکنیم یوسفو مبتدا نایمن خبرش نائمان چشه؟ اگر نه نائمنش کردیم یعنی گفتیم اندی یوسف و نائمن اون میگیم اندی خبر یوسف مبتدا نائمن خال نائمن چه؟ پس این دوتا اعرابو میتونیم بهش میدیم فلبیت ابنو که جالسون اینجا هم اگر گفتیم فلبیت ابنو که جالسون مرفوش کردیم جالسونو اون موقع میگیم فلبیت جارو مجرور ابنو مبتدا جالسون خبر جالسون چه؟ فیلبیت دیگه لغوه دیگه خبرش حساب نمی کنی اما اگر گفتیم فیلبیتی ابنو که جالسن اینجا ترکیب فرق میکنه بگیم فیلبیتی خبر ابنو مبتدا جالسن حال جالسن چی؟ حال این ابوک که مقیمن؟ او مقیمن؟ بله این مثال هم ما اگر گفتیم این ابوک که میگیم اینا لغوه؟ خبر نیست دیگه ابو مبتدا مقیمون خبر ابو اینا ابوک مقیمون مقیمون اسم مشترک چول اسم فاعل نکره هم هست آه؟ بله پس اینا رو میگیم که خبر ما نیست ابو مبتدا ما مقیمون خبر اگر مرفوش کردیم البته نکره رو ولی اگر نکره رو منصوب کردیم که همون مقیمون باشه در این حالت ارا فرق میکنه اینا ابوک قائمان میگیم اینا خبر ابو مبتدا قائما حال قائما حال بحث خیلی قشنگی بود دوتا ملحق بعدی رو الان می‌خونیم